فصل 4 وقتی خداوند فهمید که فریسیان شنیدن که او بیشتر از یحییّا شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید می‌دهد هرچند شاگردان عیسی تعمید می‌دادند نه خود او یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت ولی لازم بود از سامره عبور کند او به شهری از سامره که سوخار نام داشت نزدیک مزرعی که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود رسید چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چاه نشست تقریبا ظهر بود یک زن سامری برای کشیدن آب آمد عیسی به او گفت قدری آب به من بده زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند زن سامری گفت: چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب میخواهی؟ او این را گفت: چون یهودیان با سامریان معاشرت نمیکنند. عیسی به او پاسخ داد: اگر میدانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب میخواهد، حتما از او خواهش میکردی و او به تو آب زنده عطا می کرد. زن گفت، ای آقا، دلو نداری و این چاه عمیق است، از کجا آب زنده می آوری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما بخشید و خود او و پسران و گلش از آن آشامیدند عیسی گفت، هر که از این آب بنوشد، باز تشنه خواهد شد، اما هر کسی از آبی که من می بخشم بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد، زیران آبی که به او میدهم در درون او به چشمهی تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. زن گفت ای آقا آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشتن آب به اینجا نیایم. عیسی به او فرمود برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. زن پاسخ داد شوهر ندارم. ایسا گفت راست میگوی که شوهر نداری. زیاد تو پنج شوهر داشتی؟ با آن مردی هم که اکنون با تو زندگی می کند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. زن گفت ای آقا می بینم که تو نبی هستی. پدران ما در روی این کوه عبادت می کردن. اما شما یهودیان می باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. ایسا گفت ای زن باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نبر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمیشناسید میپرسید اما ما آنچرا که می عبادت معبادت می زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود میآید. اما زمانی میآید و این زمان همکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد. زیرا پدر طالب اینگونه پرستندگان می باشد. خدا روح است. و هر که او را می باید با روح و راستی عبادت نماید. زن گفت من می‌دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. ایسا گفت من که با تو صحبت می کنم همانم. در همان موقع شاگردان عیسی برگشتن و چون او را دیدم که با یک زن سخن می‌گوید تعجب کردن ولی هیچکس از زن نپرسید چه میخواهی؟ و به ایسا هم نگفتند چرا با او سخن میگویی؟ زن سبوی خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت به مردم گفت بیایید و مرگی را ببینید که آنچه تا به حال کرده بودن به من گفت آیا این مسیح نیست؟ پس مردم از شهر خارج شده پیش ایسا رفتند. در این زم شاگردان از ایسا خواهش کرده گفتند ای استاد چیزی بخور. اما او گفت من غذایی برای خوردن دارم که شما از آن بیخبرید پس شاگردان از یکدیگر پرسیدند پرسیدن، آیا کسی برای او قضا آورده است؟ عیسی به ایشان گفت، قضای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم. مگر شما نمیگویید هنوز چهار ماه به موسم درو مانده است، توجه کنید، به شما میگویم، به کیس زارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند، دروگر مزد خود را می گیرد و محصولی را برای حیات جاودانی جمع می کند تا اینکه کارنده و درو کننده با هم شادی کنند. در اینجا این گفته مستاق پیدا می کند که یکی می کارد و دیگری درو می کند. من شما را فرستادم تا محصولی را درو کنید که برای آن زحمت نکشیده اید. دیگران برای آن زحمت کشیدن. شما از نتایج کار ایشان استفاده میبرید. به خاطر شهادت آن زن که گفته بود آنچه تا به حال کرده بودم به من گفت در آن شهر عده زیادی از سامریان به عیسی ایمان آوردند وقتی سامریان نزد عیسی آمدند از او خواهش کردند که پیش آنها بماند پس عیسی دو روز در آنجا ماند و عدهی زیاد نیز به خاطر سخنان او ایمان آوردن. و به آن زن گفتند حالا دیگر به خاطر حرف تو نیست که ما ایمان داریم زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و میدانیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است. پس از دو روز عیسی آنجا را ترک کرد و به طرف جلیل رفت. زیرا خود عیسی فرموده بود که پیامبر در دیار خود احترامی ندارد. اما وقتی به جلیل وارد شد مردم از او استقبال کردند. زیرا آنچه را که در اورشلیم انجام داده بود دیده بودند چون آنها هم در ایام عید در اورشلیم بودند عیسی بار دیگر به قانای جلیل جایی که آب را به شراب تبدیل کرده بود رفت یکی از مأموران دولت در آنجا بود که پسرش در کفرناحوم بیمار و بستری بود وقتی شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است نزد او آمد و خواهش کرد به کفرناحوم برود و پسرش را که در آستانه مرگ بود شفا بخشد عیسی به او گفت شما بدون دیدن آیات و معجزات به هیچ وجه ایمان نخواهید آورد آن شخص گفت ای آقا پیش از آن که بچه من بمیرد بیا آنگاه عیسی گفت برو پسرت زنده خواهد ماند آن مرد با ایمان به سخن عیسی به طرف منزل رفت او هنوز به خانه نرسیده بود که نوکرانش در بین راه او را دیدن و به او مجده دادن پسرت زنده و تندرست است. او پرسید در چه ساعتی حالش خوب شد؟ گفتند دیروز در ساعت یک بعد از ظهر تب او قطع شد. پدر فهمید که این درست همان ساعتی است که عیسی به او گفته بود پسرت زنده خواهد مان. پس او و تمام اهل خانهش ایمان آبردند. این دومین معجزه ای بود که عیسی پس از آنکه از یهودیه به جلیل آمد انجام داد